بسم الله الرحمن الرحیم المطلب صادیسه العزیمت و مطلب ششم عزیمت و رخصت. شماره بیست شیشم کتاب العزیمت و من اقسام الحکم تکلیفی میفهمید که عزیمت و رخصت از اقسام الحکم چه هستند؟ تكليفية هست از انواع حكم تكليفية هست بيگه چرا لأن الأول اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العبوي بيگه چرا جزء أحكام تكليفي هست بگه زیرا اولی یعنی عزیمت اسم چیزی هست که شریعت انجامش رو یا طلب کرده هست یا مباهش کرده هست به شکل عبوب پس جز تکلیف شد دیگه وقتی که شریعت بیاد میگه این چیز رو انجام بدید یا این که این چیز بر شما مباه هست به شکل عمومی اینا اومده از مکلفین چی کار کرده؟ یا انجامش میدید یا بر شما هست؟ مباح است خب این شد جزوه چی؟ تکلیف هست دیگه لان الاول اسم لما طلبه الشاره او أباحه على وجه العموم بگه زیرا اسم آن چیزی است که شاره یا اونو طلب کرده است یا مباحش کرده است به شکل عموم و اما رخصت اسم چی هست؟ اسمون لما اباحه شارع اندن ضرورتی تخفیفاً عن المکلفی و ازیمت اسم چیزی هست که شاره اونو مباح کرده است هنگام ضرورت رخصتو بیگه از دانم ازیمت اشتباه چاپی بود و اسم اسمون لما اباحه و شارعو ضرورتی تخفیفاً علی المکلفی دقیق داشته باشید؟ بیگه رخصت اسم اون که است, رخصت اسم چیزی است که مباح کرده است آن را شارع رخصت اسم است که مباح کرده است آن را شارع هنگام ضرورت به خاطر که تخفیف میفشه بر بر مکلف، بر مکلف چه بشه؟ تخفیفی بشه خودش مثال میزنه و طلب و الاباحه من اقسام الحکم تکلیفی بیگه طلب کردن و بودن از اقسام چه هستند؟ خب همین آقا موغی جلسه غایبی یه جلسه بیایی نواب در سال قبلی رو مرور کردی که این ادامه چی است؟ این بحثش چی است؟ کسی بوده که میو گذاشت بازمون؟ دیشب آقا کجا بودی؟ دیشب با آقای حرف می‌زدید من روثن دلیل شاسته بودم. این خب چرا بچا چرا در مورد این حرف نزدید؟ بسادی خب است تخسیری ما هیچ الان آقا شما که در این سن رسیدی هویت نمیدی برای نه وقتی میگم اح</thead> کدومو میگند اح من اصلا نگاهش دور میکردم آقا کجا نشسته بودید و چی میگفتید شما کتابو باز کردید اگه من قانون نگذاشتم آقا شما بخونید خب مسلمه پس گفتید هیچ حالیت نمیشه آقا ما در شریعت دو چیز داریم دو اصطلاح داریم به نام عزیمت و محصر حکم کلی رو میگه عزیمت این که آقا شما آقا مردار نخورید اینو بگن عزیمت آقا کسی که در بیابان گرفتار شد خزا نداشت بیخست بمیره بیتوانت مردار رو چکار بکنه؟ بکند بخوره اینو بگن رخصت اینو بگن چی؟ رخصت رخصت هم اجازی؟ اجاز متوجه شدی دلار؟ پس عزیمت چی رو میگن؟ اون چیزی رو میگویند که شارع از عموم مکلفین دلات. یا به وجه عموم آقا این کار رو انجام بدید یا این کار بر شما چیست مباه است ولی رخصت نه رخصت و حنگام ضرورت شریعت میاد چکار میکنه اون کار رو جهت تخفیف مکلف برش مباهش میکنه هنگام چی؟ هنگام ضرورت نه در حالت عام مثل روزه رمزان باله مثل روزه رمضان احسن آقا روزه رمضان عظیمت هست برای همه ولی در سفر مکلفین رو بخاطر تخفیف چکار میکنه رخصت شد بیده بخوری. آقا اجازه داری چیکار کنید بخورید متوجه شدید الان؟ و في فی اللغتی القصد على وجه ترفید معنی لغوی عظیمت چه هست؟ عرب ها عظیمتو چی میگن؟ آقا تصمیم برکاری به شکل مؤکد به شکل جدی به شکل و منه قوله تعالى این آیه کریمه هم اینجا کلمه عزیمت اومده از ریشش به همین معناست فنسیه فلم نجد لهو عزماء بیگه آدم فراموش کرد ولی برای این کاری که انجام داد ما عزمی براش ندیدیم یعنی آقا ار روی تصمیمی به جدی کارو؟ نکرد ار روی چیش کرد؟ فراموشی بله پس موقعی که آدم اومد نافرمان یه پروردگارو رو کرد فراموش کرد رو خطا بود روی جدیت نبود روی عزیمت نبود پس اومد معنای لغوی عظیمت رو چکار کرد توضیح داد که آقا عزیمت در لغت به معنای قصد جدی قصد موقع و مثالی در قرآن کریم آورد که اینجا کلمه عظم به همین معناست به معنای قصد محکد قصد جدی موقع موقعی میگه فنسی و علم لهو از ما میخواد که بگه آدم گناه کرد ولی این فرمانی دستور پروردگار از روی عزیمت نبود از روی قصد جدی نبود پس معناه عزیمت رو در لغت یاد گرفتیم عزیمت یعنی چی؟ موقعی من میگم عظم تو ها؟ تصمیم گرفتم یعنی آقا تصمیم جدی گرفتم تا این کار رو بکنم پس معنای ازم و رو یاد گرفتید حالا ببینیم که اصولیون تا اینجای کار توضیح داد که چرا عزیمت و چرا رخصت جز احکام تکلیفی هستند چون بعضی از اصولیون اینا رو جز احکامت وزیق قرار دادند. در حالی که اینا جز احکامات چه هستند تکلیفی هستند آقا شما در عزیمت و رخصت از جانب شریعت یا دستوری به امر داده دا میشه یا اختیاری ولی این شو تکلیف این شو چه؟ تعملیت. اما فی الاصطلاح اما معنای عزیمت در اصطلاح آقا شما موقع کتابای فقه رو باز کردید میگن این عزیمت یا رخصته. وقتی بعد این اصطلاحاتو بدونید حالا توضیح شول بیده که عزیمت یعنی چه؟ میگن ما فی الاصطلاح فقط عرفها البعض بانها اسم لما هو اصل من الاحکامی غير متعلق بالعوارض. ومعنى هذا أن العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت لأموم المكلفين دون نظر إلى ما قد يطروا عليهم من الأعذار فهي أحكام أصلية شرعت ابتداء لتكون قانوناً عاماً لجميع المكلفين في أحوالهم العادية ولم ينظر يا ولم ينظر في تشريعها إلى ضرورة أو أضر كصلاة وصائر العبادة لقد داشت واشيت معناي أزيماته بفهمه كأزيمات يعني كي ورخصات يعني كي بمعنى أزيمات در لغتك يا تعرفتي در استله موقعی میگه این چیز عظیمته یا رخصته منظورمون معنای اصطلاحیشه دیگه میگه معنای عزیمت در اصطلاح بعضی چونین تعریفش کردند اسمی هست عظیمت که اصل هست و تعلق به عوارز ندارد یعنی اون حکم اصلی رو بیگن همون حکم چی رو بیگن؟ اصلی رو بگم که تعلق به آر... با آوارز واند روزه آقا حکم اصلی روزه چی هست؟ فرضه ولی می بینید با توجه به آرزه سفر چی میشه رخصت داده میشه پس ازیمات بگم همون حکم چی هست؟ اصلی است که تعلق به آوارس ندارد معنی این سخن چه هست میگه؟ معنیش این هست که عزیمت اطلاق بیشه بر اون دسته از احکامات شرعی که برای عموم مکلفین مشروع شده است عزیمت اطلاق بیشود بر اون دسته از احکامات شرعی که برای عموم مکلفین که شده؟ مشروع شده او روزه فرض بودنش برای ایت کیه؟ برای برا عموم مکفید پس میگیید که این جسب از زیمت نماز نواز چهرکت خوندنش از هست. اوا حرام بودنه بردار بر عموم مکلفی چست از است به این میگن بی چی؟ عزیمت رخصت اون یکی که در بعضی حالات برای بعضی از مکلفین چی میشه؟ مباح میشه. که از این حکم اصلی استثناء در واقع. که در این در واقع عزیمت چی میشه؟ بله. پس عزیمت اطلاق میشه بر اون احکام شرعی که برای عموم مکلفین مشروح شده است. بدون اینکه در نظر گرفته بشه که اوزری برشون چی بیاد پیش میاد پس در نتیجه همون احکامات اصلی رو بشون میگن چی؟ عظیمت. عظیمت پس در نتیجه همون احکامات اصلی رو میگن چی؟ عظیمت. که از ابتدا قانون کلی برای تمام مکلفین هست که ابتدا خانونی کلی برای تمام مکلفین هست ولی در حالات عادی در حالات چه؟ عادی و در بودن عظیمت ضرورت در نظر نبوده است. در بودن چه؟ عزیمت؟ بانند نماز و سایر عبادت آقا نماز و سایر عبادت اینا چی هستند؟ عظیمت هستند اینا چی هستند؟ خب حالا رخصتو توضیح بده دیگه این مسئله حله و رخصتو که لغتی از و والیوسر رخصت در لغت به معنای سادگی و آسانی به معنیه؟ سادگی و آسانی و اما فل الاصطلاح اما معنای اصطلاحی رخصت موقع شما در فقه یا در اصطلاح علما می‌خورید که این چیز رخصت است یا عزیمت اینجا معنی رخصت چیه بحث سادگی دیگه نیست اینجا آ معنای اصطلاحی داره معنای چی داره اصلاحی. هي الاحکام التي فقد عرفها البعض بقوله هي ما وصع للمكلف في فعله لعذر وعجز انه مع قيام السبب المحرم ومعنى هذا الكلام هو ما قلناه اولا قد داشته باشید بگه بعضی معنای اصلاحی رخصت و چوری تعریف کردند رخصت که رخصتان است که وسعت داده شده است گنجایش داده شده برای شخص مکلف در کارش به خاطر عذر به خاطر ناتوانی پس گنجایشی که به مکلف داده شده است در کارش به خاطر عذر و عارضه خاطر چی یاد داده همراه با اون سبب حرمتش یعنی چه یعنی آقا اینجا شما مکلف در این حالت برات مباه ولی حکم اصلی هنوز وجود داره ولی حکم اصلی هنوز آقا تو مزتر تویی که الان داری از تشنگی میبیری بی شراب در این حالت به اندازهی که نمیری برات حلاله ولی اون کی بگه؟ بستم بستم بستم بستم بستم من مورجان نجات بده ها اتشنگی نجات پیدا بودت امر جان اگه بری سال اول باور کن توصیت بیکنم که رشد بیکنیم اون جا خب دقت داشته باشید خیر است دقت داشته باشید پس بی وسعت و گنجایش داده شده از برای مکلف در کارش به خاطر عذر اما اون حکم اصلی سر جاش هنوز باقیه اگر حکم اصلی که باقی نبی بود خب ومعنى هذا الكلام هو ما قلناه اولاً معنى سخنبه همون شيء يكي در ابتداه هم در مورد عظيمت قفتي فالرخصت در نتیجه رخصت كي هست التي شرعها الشارع و على عذار المكلفين دي قد أحكامات مشروع باتوجه مكلفين دقاء داشته باشي بيگه رخصت اون احكاماتي هستن که الشارع مشروع کرده با توجه به عذرهاي مكلفين دقیق داشته باشید اون احکاماتی هستن که شاره اونا رو مشروع کرده با توجبه به احکام با توجه به عذرهای با توجه با رخصت اون حکمی رو نمیگن که شاره ابتدا اون چکار کرده باشه با توجه به عذر استثنایی برش قال شده حکمی بهش داده ولو لاها لباقي الحكم الأصلي. اگر شو نحن؟ شو الأزر هنا ميبود؟ سر جاي أصليش؟ باقي. باقي. ميبود. فهي حكم استثنائي من أصل كلي. فاسدر نتيجة إن أزمات يك حكم استثنائي هست. از أصل كلي. از القائدية كلي. أز الحكم كلي. وهي في أكثر الحا حا... وهي في أكثر الأحواله. تنقله. باله دقيقة، باله. فهي وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم الأصلي من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة وقد تنقله إلى مرتبة الندب أو الهجوبة. دقيقت عشرة وعشرين بقدر أكثر الأحوال. تون قلو الحکم الاصلی من مرتبت اللزوم الى مرتبت الاباح حکم اصلی رو به مرتبه چی میرسوند؟ مباه بودن یعنی آقا حکم اصلی مثلا این است که بر شما اون چیز فرضه یا حرامه حکمش رو بیاره به مرتبه چی میرسونه؟ مباه برات مباه میشه برات چی میشه؟ مانند خوردن روزه حکم اصلی واجبه فرضه ولی شما در بعضی حالات روزه بره چی میشه مباه میشه یعنی اختیار داری که اونو چکار بکنی اونو بخوری این شد مباه در بعضی حالات به مرتبه مستحب بش بیرسونه آقا بهتر اینه که اون حکم اصلی رو رها بکنی مستحب اینه که و اینو چکار بکنی انجام و گاهی موقع به مرتبه واجبش میرسونه آقا بر تویی که داری میبیری واجبه که با چیکار مکنی از این حالت مربوط نجات بدیدی بله از این مرگ خودت چیکار کنی متوجه شدید الان پس این عذیبت اون حکم گاهی موقع به مرتبه مباه میرسونه بله دیگه یعنی, یعنی اول حکم اصلی حکمش الان دیگه برای تو چی میشه؟ مباه میشه گاهی اونو به درجه مستحب میرسونه آقا این رخصت مستحب انجامش بدی و گاهی موقع به درجه وجوبش میرسونه که باید این رخصت رو چیکار بکنی انجامش بدی مثلا کمرش یا پاش مشکلی داره میگه من نه این سال نماد میکنم خب تو اگه بیستی یه سره میشی دیگه بلد میشی، حتی نخواه میشی پس بشین